از خانم سوال پرسیدن که در مورد مراتب ایمان که بالاترین مرتبهش چیه و تا چه حد میتونیم جلو بریم و چه وسایلی میتونیم کمک بگیریم به حدی که عمرمون اجازه بده ایمان به نیته ایمان وسیله پیدا شدنش ازدیادش عمله حدش رو نیت میکنه برای خدای متعال وقتی میخواد سنجیش کنی ما رو به کمیت و مقدار عمل توجه نمیکنه خدای متعال به نیت نگاه قاهم کنه لذا امکان داره کسی کم عمل داشته باشه ولی درجهش از اونهاي که اهل عمل هستند پایین تر نباشه مخیلی راهب یکی از مسلمون های پینماز هست که مرتبش انقدر بالا که جزء شهدای بزرگ عالم اسلام که بعضی ها مثلا بحث میکنن که شهدای آثار بعد بعد از صدر اسلام آیا میتونن هم وزن شهدای مثلا اوهود بشن بدر بشن خیلی ها قبول ندارن میگن اونها سرآمدن مو راهب یهودی بود از به اصطلاب علمای یهود هم بود. در زنگ احود وقتی دقت کرد به پیانبر خاتم دید نشانه هایی که در کتاب از پیانبر خاتم مطرح شده در وجود این هست. تو راه اومد خدمت شوارش کرد که من میخوایم مسلمان میشن. تو چه راهی مسلمان ها دیگه شور کرده بودن. قرار بر این شد که یک دفاع از شهر مدینه برن بیرون شهر دفاع کنن مقابل قرش که از مکه حرکت کرده بود و از وادی عقیق داشت می اومد به مدینه وارد بشه یعنی از جنوب اومده بود وادی عقیق دور زده بود که از شمال مدینه وارد بشه با یهودی های مدینه هم بسته بودن که یهودی های مدینه مثل بنی وقا و بلی نظیر و اینها که جنوب مدینه زندگی میکردن پرس کنن مدینه یهودی ها از جنوب مدینه قرهش هم از شمال مدینه به از اهد وارد شد که 6 کیلومتر اون موقع با مچید النوی مثلا حاصله داشت در حال حرکت بودن جیش اسلام و سپاه اسلام داشتن میرفتن به سمت بیرون شهر مدینه مخیلی اومد جلوی پیانبر رو گرفت گفت من شما رو پیانبر خاتم میدونم با این نشانه هایی که در کتاب تورات هست توراتی که هنوز تحریف نشده بود حضرت گفت شهادتین بگو گفت میخوام قبل از شهادتین باقه هم رو شما کنن گفت شهادتین بگو که بخور شرعن درست در بیاد شهادتین گفت گفتش که تا دا باغ دارم تا دا رو میخوام بدن به شما گفت نه پنج داشو ابنده برای اسلام بده یکیشو بذار برای دخترت برای دختری داری اون بیوزاعت نشه او هم گوش داد و راهی جهاد شد با سپاه اسلام حرکت کرد در حالی که هنوز یک نمازم نخونده بود. رفت از جنگ احود همون روز به شعادت رسید. مقامش در مثلا مقام شهدای بدر احوت هستش. تو بعضی از زیارتنامه ها ما اونها رو قسم میدیم. خدا رو به اونها قسم میدیم که حاجتهای من رو مثلا بگیریم. لذا کمیت برای خدا مطرح نیست. تعداد عمل زیادی عمل اون عملی که واجب انسان انجام بده اونی که حرام هست تحک کنه نیتش رو به باورش رو به خدا به وسیله این عمل و تکرار عمل خدایی و الهی اون باوره رو هرچی تقوییت کنه اون باوره رو خدا نگاه میکنه. کنه لذا می فرمد این عمله به،, به نیات یا جای دیگه داره که نیت المؤمنه خیر من عمله بلی